<تصفيق> راژیو <الزایمر> نویسنده و کارگردان احمد رزا معتمدی بازیگران مهدی حاشمی <مبرم> تمی ساج خام کلا مهتاب کرامتی دستماز چماکارم چه میشه مهران احمدی دقیقاً به خاطر همون چیزی که اومده اینجا بستری شده حالا یه چند روزی بعد بیاد بیرون حمید ابراهیمی خب بابا اسمت چیه علی خازنی قربان گزارش دادن یه خورشیدی تو سبزومیدون مارکی گرفته با حضور فرامرز غریبی خاطرت با من کاری کرده که دیگه چیزی از نمیم نمونده که بخواد براش بفکر برسونه اسپروسای باسیبی علی سمدپور تهیه کننده سعید سعدی از توی صفحه نمایش دوربین به شکل سیاه و سفید صحنهای ای رو مربوط به 20 سال پیش میبینیم ماشینی آتیش گرفته ماشین پلیس از راه میرسه. دود همه جا رو گرفته. آمبولانس هم از راه میرسه. وسایل زیادی روی زمین افتاده. دو پلیس مشغول بررسی صحنه هستند. آتش نشانی هم میاد. آتش نشانها مشغول خاموش کردن آتش میشن. جناب سرهنگ با بیسیم صحبت میکنه. دو امدادگر در حضور مأمور نیروی انتظامی جسدی رو بر روی برانکارد میبرند. آمبولانس دیگه ای به این جمع اضافه میشه. دکترا پرستارا پیاده میشن و دوان دوان خودشونو بالای سر یه زخمی میرسونه امدادگرای دیگه بیماری رو به آمبولانس منتقل میکنه پجوی سفید قدیمی میاد و بین ماشینهای موجود توقف میکنه یه مرد میان میانسال که سیبیل هم داره به همراه زنی جوان که چادر سفید گلدار سرش از ماشین پیاده میشن برادر زن هم راننده است که پیاده میشه مرد با مأمور نیروی انتظامی دست میده و مأمور چیزی در گوش اون میگه که زن نفهمه. پلیس زن جوان و بالای سر جسد سوخته میاره که اونو شناسایی کنه. زن نگاه میکنه. مرد میانسال طاقت دیدن نداره. برادرشه. پلیس دلداریش میده وسایلی از متوفا پیدا شده. مأمور اونو به زن نشون میده. خواهد شد. نه، این آمی خاص نیست. پوشارمان نمیده. چون به موامو دورشوم. دیگه نزدیک سخت فقط باید دوتا شغل داشته. زن جوان به اتفاق برادرش از جسد فاصله میگیره. مرد میان سال با موامورا تنها میمونه. زن که آبستن هم هست و حالش مساعد نیست با کمک برادرش سوار ماشین میشه. حالا مراسم تشییع امیر قاسم مرحوم رو میبینیم تابوت روی دست مردان و عده سیاه پوش پشت اون در حرکتن و گریه میکنن پیر و جوان و همون مرد میان سای. دو زن زن جوان رو که باور نداره مرگ همسرشو به زور میکشن برادر زن هم در کنارشونه صدای فیلم لحظه قطع میشه و مردان تشریه رو میبینیم مرد میان سال هم مقموم پشت سرشونه بازم قطع صدا زن جوان رو به زور میبرن و اونم مدام مقاومت میکنه صدای فیلم قطع میشه برادر زن رو میبینیم که عصبی به سر خودش میکوبه و حالا تشیه کننده به کنار قبر رسیدن جنازه رو میزرن زمین زن اصلا حالش خوب نیست میشینه برادرش عصبی راه میره و توی سر سرکله خودش میزنه زن از حال رفته زنای دورش با چادر مشکی خودش بادش میزنند برادر بازم سعی میکنه خواهرش آسیه رو آروم کنه حالا تدفین انجام شده و مردها ایستادن و زنها نشسته بر سر قبر گریه میکنند و عکس امیرقاسم مرحوم وسط تاج گلی دیده میشه 20 سال بعد کارگاه بلورسازی شاگرد کارگاه که دستکش مخصوص دستشه نزدیک پره با انوار مخصوص قطعی رو شکل میده آقا نعیم همون مرد میان سال که حالا مردی است مصمی با موهای سپید در حین کار بلورسازی به صحبتهای محمود برادر آسیه که حالا مردی میان سال با موهای کم پشت و بهش کمک میکنه گوش میده و هیچی نمی‌گه. آقا الان 20 سال کمی قاسم رفته و اگه اون نگش جمال امير قاسم نبود. به کدوم فلک زدی بود؟ با اون سامه و کیف و نامه ما تکو صدا. آقانای تین خامس سال که اسم شما رو آسیات میدونیم مردم راجب شما چی فکر میکنن؟ میگن آقانای سرشو برده گذاشته دیونه خونه، خودش هم سرشو گرد کرده تو کوره. آقانایم چپ چپ به محمود برادرزنش نگاه میکنه و قطعه شیشه ای رو توی کوره میذاره. محمود هم دنبالش میره دم کن آقا جا که ساله این اگه اجازه بکنی من برم آسیه رو از آسیه رو بیارم بیرون ستو کندگوزه شهر و چارتو فک و پامی و در و همسایه رو خبر کنیم ببریم سر مردان هرچی هرد باید سرمون تلم با رو همون رو دفت کنیم و برگنیم دیگه الباقی قصه با شما ها آقا نعیم بازم چپ چپ به محمود که کمکش شیشه های نیمه مذاب رو قیچی میکنه نگاه میکنه و ازش جدا میشه آسایشگاه بیماران دوانی بودیه مدیر آسایشگاه توی راهرو مشغول سرکشی به وضعیت بیمار است بازم رو دست و سعیش گردیم از توی انتظار نداشتم سود باشید بچه بجنبید خانم مدیر از جلوی اتاقی رد میشه و به اتاق دیگه میرسه که دختری از طبقه دوم تخت پایین میپره سری به تأصف تکون میده و به اتاق دیگه میرسه که آسیه هم اونجاست و دو نفر دیگه پیش بندشو بهش نمیدن مدیر آسایشگاه بیماران رو جمع میکنه بچه ها وارد حیات آسایشگاه میشن پیرزنی روی ویلچر کنار نیمکتیه که زنی روی اون نشسته. دورتر هم زنی روی نیمکت دیگه است دخترها به ستون یک از ساختمان خارج میشن و به ساختمان دیگه میرن کارگاه پارچبافی آسایشگاه مدیر آسایشگاه به همراه دکتری به کارگاه اومده و پیشرفت بیماران رو به دکتر نشون میده و دکتر هم به هر بیمار نگاهی میکنه چیزی آداشت میکنه و رد میشن دختر و زنها در کنار هم سخت مشغول کار هستن به دختری میرسن که نخها رو چک میکنه. خانم مدیر زیر چشم و دست های دختر رو به دکتر نشون میده دکتر بازم چیزی یادداشت میکنه ماشین کار میکنه و رشته های زرد و آبی در هم تنیده میشن پشت این رشته های زرد و آبی آسیه نشسته نخارو چک میکنه بلند میشه میسته و به کارش ادامه میده سرف سرویس آسایشگاه زنی غذا گرفته قاشق چنگال برمیداره بقیه هم تک تک میرسن و میرن توی صف آسیه که قزاشو گرفته به قسمتی میرسه که دختری با روپوش صورتی کاغذی بهش میده و براش ماست میریزه آسیه هم کاغذو زیر سینی غذاش قایم میکنه میره و سری یکی از میزا میشینه زیر چشماش کبود و دورش قرمز اول مقداری از دوغشو میخوره نگاهی به اطراف میکنه لیوان دوغ و زمین میذاره و کاغذو از زیر سینی بر میداره. اونو باز میکنه سری میخونه لبخندی میزنه و كاغذو جمع میکنه و توی جیب روپوشش میزنه قاشق چنگالشو برمیداره و مشغول غذا میشه حالا آسیه مغموم روی نیمکتی در کنار برگهای خزان زده نشسته قاب کوچک تو گردنی رو از جیب روپوشش میاره و بازش میکنه به قاب قلبی شکل که عکس خودش و امیر قاسم مرحوم توشه نگاه میکنه و لبخند میزنه همون دختری که توی رستوران بود و رو صورتی داشت با قدم های تند از روی برک های و نیمه خوشک پاییزی رد میشه و خودشو به آسیه میرسونه و روی نیمکت کنارش میشینه آسیه پاکتی بهش میده و دختر هم روزنامه از جیبش در میاره و میده به آسیه چیزی رو توی روزنامه به آسیه نشون میده و حرفی نمیزنه دخترم پاکت رو باز میکنه و پولهای توش رو میشماره آه. حدود چهل پنجا هزار تومن هست دختر پاکت رو توی جیبش میذاره روزنامه رو از آسیه میگیره و دوان دوان از روی برکهای پاییزی رد میشه توی راه روزنامه رو میندازه توی سطل آسیه هم بلند میشه میره محمود برادر آسیه توی دفتر مدیر آسایشگاه است مدیر ای میاره پشت میز میشینه و با محمود صحبت میاره نه اصدار بیش از حدتون برای بستری کردن این زن سرداره بردم. بنظرت پروفشوری حالا برای گرفتن مرخصی یعنی انقدر حالش بده نه آقا ولی هر بیماری رو پزشک خودش بعد نظر بده من نباید تو کار اونا دخالت کنم پس شما حالا دیگه از نظر شما یه بیمار حساب میشه خوبه پیداشینه هر کی که اینجا بستری حتما یه بیماره دقیقاً به خاطر همون چیزی که اومده اینجا بستری شده حالا یه چند روزی بعد بیاد بیرون اینجور امضا کنید که مسئولیت این مرخصی بنده خودتونه چاش محمود خودکاری برمی‌داره و ناراضی امضایی می‌کنه و خودکارو سر جاش میذاره آسیه که از حیات برگشته توی راهرو در مسیر رفتن به دفتر مدیر آسایشگاه رو با بلوز قرمز و کت مشکی می‌بینه که به ماشین قهوه ایش تکیه داده آسیه در حالی که موقع راه رفتن به زمین نگاه می‌کنه وارد دفتر میشه و جلوی منشین میسته وارد اتاق مدیر آسایشگاه میشه جلو میره و مقابل میز خانم مدیر که پرونده آسیه جلوشه میایسته میتونی وسط تو جمع کنی چند روزی بری مرخصی اینجا پزشکت نوشته ازت راضیه. نسبت به کار چمه های تو کارگاه نظر مثبت بده ازت میخوام تو این چند روز نشون بدی که چقدر حالت بهتر شده دستماز چمه ها کارم چه میشه؟ برو یه کاریش میکنم آسیه میره خانم مدیر گوشی تلفن رو بر میداره و شما الو تاوانی آقای اسگری همین امروز از یه اجاگاز بفرست منزل آسیه صادقی بله مرسی آسیه بلد. توی ماشین برادرش محموده محمود در حین رانندگی از توی آینه جلو به آسیه نگاه میکنه و با صحبت میکنه تو بزرگ منی احترامت واجب من اگر حرف بی رب میزنم بزن تو دهنم آخه تو کهی میخوای لجوازی کنی؟ الان چل سالت شده دختر دانشجو داری دیوون خونه هم شد جای زندگی اگه قبول نداری که امیر قاسم جزغال شده این مرد الان بیست ساله که رفته و برنگشته. نگشته یه هم که شوهر بیغیرتی اگه تا حالا زنده هم باشه دیگه ارزش انتظار کشیدن داره نگاهی به آسیه میکنه تا عملش رو ببینه آسیه فقط خیره به نقطهی نگاه خوشبختانه نه تو داری نه من. پس میرم سر اصل مطلب فردا میریم سر مزار امیرقاسم غاسم میخونی بعد این بیس سال و هرچی که خوب و بد گذشت همه رو فراموش میکنی میزدی کنار میری سر خونه زندگیت بهت گفته باشم این بار اگر آب تو دل آقا نایم تکون بخوره وقت من میدونم تو، تو شیرفم شد بنز قهوه قدیمی محمود در خیابان در حرکتی که به راهبند ریل قطار میرسه قطاری در حرکت پشت راهبند میستن تا قطار رد بشه کارگاه شیش و بلور رحیمی آسیه توی ماشین نیست محمود سوار ماشینش میشه و از یک قسمت کارگاه به قسمت دیگه میره که سندلی های تاشو رو پشت وانتی بار می‌زنن. از ماشین پیاده میشه بگی بگی بگی. از اونجا سندلیارو. از اونجا. از اونجا سندلیارو از اینجا. کسی نا باشی؟ کسی نا باشی؟ کسی بله آقا چی <سؤال> شد؟ پایی سندلی ها بدیم دارم بزن آقا امت باشه ترتمیز باشه آقا یاله دراحت باشه آقا آقا نریزی اچه بتو کنم آره حاجم باشه آقا آمده جم تو خدا جهد بکنم آمده آمده دادن آقا این صالمه دیگه دلی دنزی با کرد اطلاعی های اینکو دادم شاشه به شورا نخواه آره اطلاعی ها تو اطلاعی ها آه... نیمرو. آه... داره. محمود از کنار کارگرایی که مشغول کارن و جعبه‌ها رو بار می‌زنن می‌گذره. از چند پله فلزی سبز بالا میره و وارد دفتر آقا نعیم میشه. آقا نگران نباشین. همه چیز حل اعدامیارام دادیم چاپ کردن و آقا نعیم روزنامه رو که میخوند به محمود نشون میده محمود روزنامه رو از روی میز بر و میخونه تعجب میکنه به آقا نعیم که حسابی تو پشپاره نگاه میکنه روزنامه رو پایین میاره نمیدونه چی بگه نگاه غذابالود آقا نعیم و تاب نمیاره روزنامه رو مشاله میکنه و میندازه و از اتاق خارج میشه این هم نفس میق از سر استیسال میکشه محمود عصبی پشت فرمون ماشین قهوه قدیم و به سرعت به سمت خونه میره توی حیاط خونه چندری بسات پخت ش زرب یه نفر هم میزنه دختری کاسه آماده رو تضین میکنه دوتا از خانم ها رو تضین می کنن. دو نفر خرمه ها رو مرتب میچینن و دو نفر پیش رو تمیز میکنن دو نفر هم سر یک دیگ بزرگ زرد هستن و هم میزنن همسر محمود از خونه بیرون میاد. دست دادن. بریز، نهیمیم بریز از فش دادیم. اون آگهیشم بق بیفته، قربون دست. دو کارگر آجاه گازی رو توی حیاط میارن و زمین میذارن. همسر محمود به استقبالشون سلام علیکم. با کی کار داری؟ فامیل نزدیک پنجره اتاق آسیه می آسیه جون آسیه جان این یکی گلابه بر اون دیگ همسر محمود میره و آسیه چادر به در همین اصنا محمود عصبی از در حیات وارد خونه میشه و بعد از طی یک راهروی کوتاه زیر طاق میسه و نگاهی به حیات و وضعیت اون میکنه میخواد توی خونه خودشون بره که متوجه آسیه و کارگره و اجاغگاز میشه به طرف اونا حمله میکنه و لگدی به اجاق گاز برو تو بینید چرا ها؟ شکل چرا؟ ببینی تو همونقدر بستوری که آوردی؟ نمیخواد همون کاریش ندارم، کاریش ندارم من کاری با ندارم، حرف بزنم. بایو. بایو. بایو. ندارم. قول دارم. قول دارم. قول دارم. تو. بعدش سریع به طرف آشپزخونه میره و آسیه رو هول اینا یونکی ها؟ ها؟ یونو دات ورم میام. کن. کن. ها. اینا که هم جنس اینا خودت چی اومدن اینجا؟ ها؟ چیکار کار دارن اینجا؟ دلهم از سبه بی مرود، بگو لام تکان واکن اصلا من ببینم خودمو دارم جر میدم، به قربتو میخمی، هلا ده میگم چاک اون دهن و واکن من گور به گور شده بفهمم تو اون کل خرابه چی میگذره بابا ما تو این شهر آبرو داریم این آقا ناییم رو یه شهر میشراسن تو خوب این زنا که اومدن حلوا میپزن برای منت چون مرگ شده است یا شوهر مرحوم تو فکر نمی کنی اگه اینا بفهمن تو برای شوهر مرحومت یه گم شده رفتی چاپ کردی میگن این خونواده یه مش خلا چلو دیونهن آسیه اما بی هیچ جوابی صورتشو رو به شیشه چسبونده و فقط حرفا رو میشنه شب شده همسر محمود بچه بغلشه پرده خونه رو کنار میزنه و توی حیاتو نگاه میکنه نگرانه از پنجره دیگه نگاه میکنه و از یه پنجره دیگه تا میرسه به محمود که جلوی پنجره دیگه ایستاده و سیگار دود میکنه بچه رو زمین نیزاره دود سیگار همسر محمود و اذیت میکنه میدونچه این نزدیک محل زندگی خانواده آسیه پیکانی نخدی رنگ وارد میدون میشه یه دور کامل دور میدون که درخت بزرگی هم وسطش هست میزنه توقف میکنه مرد جوانی از سمت شاگرد پیاده میشه و در عقب و باز میکنه و مردی مسن رو به زور پیاده میکنه و اونو که کیفی هم بردوشش داره میکشه و وسط خیابون میاره پسر روزنامه ای رو به مرد میده و خودش میدوه سمت ماشین و سوار میشه ماشین حرکت میکنه مرد محسن خودشو جلوی ماشین میندازه. دو مرد جوان که سوار ماشینن پیاده میشن و عصبی مرد محسنو میگیرن و به زور اونو به گوشه میبرن. فرمایونو اینا قشنگ اینجا نگردن چرا من نمیبرین داره خونه شون؟ آخه ما که آدرس خونه نداریم قربون شکره. اینجا بالاخره یکی پیدا میشه جمعت میکنه خب. بر روزنامه‌ای که آگهی گم شدن امیرقاسم توش هست تو. میدن دستش و اونم روی سیناش نگه میده نه بابا میگه چرا من نمیبرین در خونه آخه بگو احمد آدرس خونه رو ندادن که آدرس دیگونه خونه رو نداشتن عکس توی روزنامه شبه خودشه خودشه امیر قاسم. پیکان میره زنی که در حال گذره مرد و روزامه رو میبینه نگاهی آقلن در سفیه به اون میکنه و رد میشه. دکی روزامه فروشی شروع به کار میکنه بقالی محل هم همکررکره رو بالا میده. مرد هم وسط خیابون ایستاده و روزنامه ای رو که روی سینشه به همه نشون میده. اکثر مردم بیا از کنارش رد میشن تا اینکه چشمش میفته به عکس خودش که روی شیشه دکه چسبونده شده. منم، این منم. دکه دار به طرفش میره. نگاهی به روزنامه میکنه. مرد دکهدار مطلب زیر عکس رو توی روزنامه میخونه و، از مرد فاصله میگیره مرد دو قدمی دنبالش میره اما منصرف میشه مرد دکهدار تلفن همراهشو در میاره سراغ آگهی روی شیشه دکش میره شماره زیر عکس رو میخونه و میگیره پراید سفیدنگی نزدیک مرد تازه توقف میکنه مرد جوان پیاده میشه و بعد از حساب کردن کرایه بی هوا به طرف مرد تازه وارد میره این من من. سیگاری در مرد تازه وارد یا بهتر بگی مرد غریبه با روزنامه میپره جلوی مرد جوان تا توجهشو به عکس توی روزنامه و خودش جلب بکنه. باز هم نگاه عاقلن در صفی این بار از طرف این شخص. در همین لحظه محمود با ماشین خودش و چند ماشین پشت سرش از بغل مرد یا امیر قاسم رد میشن و اونو اون کلانتر. بله بله جناب سروان با تلفن صحبت میکنه. خک ون هنوز پروندهش به دستم نرسیده باشی باش فعلا خدا آفز. جناب سروان که بالای سرش بدون موه از جاش بلند میشه کلاش از ازوی میز دیگه برمیداره از اتاق خارج میشه و پیش همکار چاقش میره اوچنیا؟ من یه نکفه میدم شاز عبدالله سر مزار دادش آقا نهیم قربان گذارش دادن یه خلوشلی تو سبزم ایدون مرکی گرفته من خودم برگشتنی میرم میدون ببینم چه خبره بشین متوجه نشده که گفته بشین جناب سروان از کنانتری بیرون میاد سر مزار امیر قاسم رحیمی آقا نعیم برادر و محمود برادر زن مرحوم اونجا ایستادن روحانی پیر هم در مد اوین نشسته جناب سروان هم از راه میرسه و یک راست پیش صاحبان عذا میره به تک تک اونها دست میده و میره کنار روحانی پیر میشینه محمود نگاهی به دورو بر میکنه و چیزی در گوش آقا نعیم میگه و به طرف ماشینش میره که آسیه توی اون ماشین نشسته و همسرش هم دم ماشینه آسیه جان قربونت برم پس دلخوشی آقا نعیم و دداشیتم که شده یه نوکه پا بریم تا سر رو برگردیم خوش قربونت برم پشتو خوشو دیگه چرا نمیاد محمود تو رو خدا به خدا خیالت راحت میاد قل داده خیالت راحت تو رو خدا. خودم میارمش قل داده که بیاد د میخواد فقط نقد من میدونم اون اکتور خود اینجااب وریسی نکن محمود سر قبر بر و همسرش نگران پیش آسین پوش شدی یا آسییهجان. در همون میدونچه مرد تازه وارد اددی رو دور خودش جمع کرده و با یک روسری براشون شبت بازی میکنه ماشین جناب سروان از راه می فکر میکنم خودشه دور بزن نگه دار ماشین دور میدون دور میزنه و به جمعیت میرسه که مرد از وسط دستمال براشون گلی ظاهر کرده آره ماشین پلیس آگاهی توقف میکنه و جناب سروان پیاده میشه و به جمعیت میپیونده مرد به سیگاری که از مردی گرفته چند پک میزنه و اونو توی دستمال فرو میکنه و میچرخونه و قیبش میکنه و ببین آ سین سالابن نیکورا سین سالابن جناب سروان بهش نزدیک میشه سلام سلام جناب سروان عینکش رو به چشم میزنه تا بتونه مطالب روزامی که حالا مرد به گردنش آویخته رو ببینه منم یه بار دیگه انجام بده ببینم دواره دواره. دواره. باشه. دواره باشه باشه باشه دواره. باشه دواره دواره دستمانه دیگه نه دستمان خالیه آه آه آه آه بیش. ها یه سیگار روشن بده یه سیگار بیا مرد قسمتی از دستمال آبی گلار پیل مشتش خاموش می‌کنم. آه آه سره بین نیکورا بش بش بش آه برید برید جمع نشید تو زود باش و سرطه جمع کن برید باشه بری. مرد ساکشو رو بر میداره و میدوی طرف ماشین با اشتیاق از در عقب سوار ماشین میشه جناب سروان هم سوار میشه و ماشین راه میافته بر بیگرده بر میگرده. توی کلانتری برای مرد غذا آوردن نمک میزنه و میخواد بخوره جناب سروان میاد پیشش میشیده خب بابا اسمت چیه؟ جو. کار خراب. کلی خراب. بچه‌ها میگن. این میگه اینجا عکسش هست کیه؟ این منم. باب. اون کی اسمش امیر قاسم؟ بچه‌ها گفتن تو ای... من عکسش دیدم گفتم خودشه. در این آدم 20 سال پیش مرده. 20 سال پیش. ای بابا. تو می‌ساج قرم می‌کردن. تو تو این 20 سال سیگار می‌کردی. این آدم نمی‌یاد. آقا. آره چندو یادم میاد ولی قبلیش هر چی به خودم فشار میارم با زندون بفتی بره فرار کردی نه من اونجا کار میکنم نه کار میکنی چیگار میکنی شو بده نه من جارو میکنم جارو میکنم اونجا زندنی بود کدش قرب نبود من برش سیگار میکردم این ها رو یادم میدن میخوای کلات اجابی جا کنم سینی غذاش رو کنار میزنه و با تمرکز به کلاه جناب سروان که روی میزه نگاه میکنه جناب سروان کلاشو سریع بر میده نخواستم که غوهش کنم بان سروان پیش قوچانی که دم درره میره زیش نکنه غذاش بخوره به برش دللت های فکریشکنم در کارگاه شیش و بلور باز میشه جناب سروان با ماشین پلیس آگاهی وارد میشه در کارگاه بسته میشه قوچانی پیش یکی از کارگران که مشغول کاره میره کجا؟ کارگر با دست آقا رو نشون میده و اونم به طرفش میره آقا مشغول کار متوجه قوچانی نشده بیاری؟ دست از کار میکشه و از پای کوره کنار تو که پا تشید برید صاحب این برسید توی روزنامه رو میگه آقا ناییم دوباره منقلب میشه دستی به مواش میکشه کت لباسکارشو در میاره و با اشاره اون یکی از کاغرها کت خودشو میاره و میپوشه آقا ناییم ظاهراً حرف نمیزنه آقا جون کجا؟ چی شده؟ چیز ماهی می نیست سر کره یه نفر پیدا شده بچه هست یه دقیقه اجازه بده شما ببخشید آقام یه لحظه ظهگر محمول با اجازه قوچانی آقانایی ما به محل بسته بندی سرویس های مرولور آقا خال تو سر ما رششته شما های دقیقه به دقیقه پاشی بری کلانتری با هر کس وناک امخور بشید برای ما افتار خدا وکیلی شما برو دفتر من خودم میرم کلانتری ق رو راستریس میکنم. آقا نهیم عصبی سمت دفترش میره محمود هم پیج قوچانی میده آقا بنده در خدمت شما هستم من کار شما رو را میدازم کوچانی به ناچار پذیرفته هر دو سوار میشن ماشین از محبته کارگاه خارج میشه توی کرانتری دو نفر درگیره و مرد اونها رو نگاه میکنه معمولی میاد و اون دوتا رو جدا میکنه مهمور مرد پیرهن چارخونهی سیبیلی رو میبره و مرد پیرهن قرمز شاکی در گوشه میشینه مرد مشغول شعبت بازی با تکتنابیه که محمود در معییت اوچانی از راه میرسه افرین میرم اینجا میریم آخرشم سر کاری بابا جون گوچانی تا مردو میبینه بلا فاصله نیست کمی دورتر مردو به محمودشو میرم بابا محمود میخواد بره که قوچانی بازوشو میگیره نگهش میداره و ازش میخواد جلو بره محمود جلوتر. تنه قد مرد کوتاهتر از محموده. محمود دور مرد میچن دیگم سر اون گذاشته نیست به محمود و قوچانی از اونجا خارج میشن و به طبقه بالا میرن به محل دفتر کار قوچانی رسیدن آه. اینو واسه چی آوردی؟ آقا نهیم داشت میومد ایشو مانه شدن. شما پیاز یا تای پیاز من گفتم آقا نعیم بیاد. شما حرمت مردن نگهر نمی داری؟ لا اغل حرمت صاحبزار نگدار. آقا با این موقعیت و سن و سال هی هردم پاشه بیاد کلانتری با حد بی سر و پای کله بزنه. خدا خوش میاد. پس شما میفرمایید هر وقت خواستیم با آقا نئیم حرف بزنیم، باید شما رو ببینیم؟ خوبه اشکال نداره پس بفرمایید اون غریبه رو شناسایی کنید ببینم چه گلی به سر ما میزنید مخوایین یارو چه ربطی به احمد قاسم داره جناب سربان با سر صحبت رو باش با کنیم حسابش چیه سر از کارش در میریم اون دوتا میرن و جناب سربان فکری به کارش بر میگرد. محمود پیش مردی که خودشو و قاسم معرفه کرده میره حالا مرد رو سندلی نشسته. کبریت داری؟ سرکاریه؟ نعم، میخوام سیگار بکشم. سیگار؟ اینجا محمود سیگاری جیبش در میاره و به لبش میذاره. مرد هم مثل شوبره بازای حرفه‌ای کبریتی از زیر یقه محمود بیرون میاره. روشن میکنه. خودت کبریت داشتی که شیطون. مرد کبریت رو پشت دست دیگهش نگه میداره. فوت میکنه. تبدیلش میکنه به یه گل کوچولو و اونو تقدیم میکنه به محمود. محمود نمیگیره و مرد گلو توی جیب محمود میذاره محمود به مرد نگاه بگیم دادش تو ختم روزگار من یه بچه دادی من؟ خوب تو چشمه من نگاه کن من نمیشنسی؟ من چیزی به یادتو میگرم تو از کجا بشنسمت من اینجا قریبم کسی ها تازه اومدم و تو رفیق باشی به زن هم. بزن بس سلامتی پس بچه اینجا نیستی نه برای چی اومد اینجا خودم نیومدم بچه ها خوردنم گفتن میریم سای موف کنجش موف یه وقتی دیگ گرفت و خودش از در درمه دی خودش بزنمش اینجا بود بچه های گرفتن ازم خودم این وقتم را دیدم جا خوردم خود خودش بود حالا میخوای چکا کنیم من رو میبری خونه شو محمود کلافه بلند میشه و پیش جناب سروان که داره از دور نگاهشون میکنه میره جناب سروان هم مستحصل شد با جنابی بیا کیف پول تو بگی بس همشی خیلی کنم به دل نگیریم کیف پول محمود از جیبش زده بدون که بفهمه جناب سروان میره اتاق جناب سروان استوار اکبرید اون آلبوم چره پرتزی کلا برداره رو بستم بعد بیراد جناب سران از شما بعیده این مرد که شهیاد باز احتیاج به شناسایی داره آخه کی شد؟ نشناختیش؟ آقا من خرفت آقا این خودش داره میگه من کلا بردارم گفتم کار تو نیست آقا نه این باد بیاد آقا وزیفه شما دستگیری شهیاد کلا برداره در آقا نه این چه داره خاشو باشه وظیفه منو یادم نده. همین الان پا می‌شی می‌ری نه آقا نعیم نازنشو و می‌ذاری میری اینجا. اینجا که جای بچه بازی نیست آقا. باشو. حیات خونه. آسیه بطری از توی زیر زمین برداشته و توی حوز می‌شوبه. با شنیدن صدای زنگ سریع چادرش رو سفت می‌کنه و توی خونه میده. آقا نعیم از در تو میاد و وارد حیات خونه میشه. مثل همیشه سر به زیر و کمی عصبی. یه شمدون بلور دستشه اونو سف توی دستاش فشار میده و یه لحظه متوجه میشه که همسر محمود از لای پرده داره اونو میبینه ای فکر میکنه و دلو به دریا میزنه و به طرف اتاق آسی میره از دو پله بالا میره لحظه تردید سه پله دیگر رو تیم میکنه و پشت در میرسه بازم مردده به شمدونه توی دستش نگاه میکنه در نمیزنه منصرف میشه. برمیگرد و از پلهها پایین میاد و به طرف دیگه‌ی حیات که اتاق یا بهتره بگیم خونه خودش میره ورودی خونه با موکت زیبای آبی فرش شده که روی اون هم باریکه قرمز رنگ انداخته شده. از پلهها بالا میرن و به طبقه بالا میرسن. محمود با ماشین به در فروشگاه کارگاه رسیده. کرکره تا نیمه پایینه و فروشنده بیکار جلوش نشسته. با دیدن محمود بلند میشه. محمود بعد از توقف ماشین پیاده میشه. چرا تأخیلی؟ من میدونم حسین گفته محمود سوار میشه و وارد کارگاه که همون بغله میشه. کارگرها جمع شدن. سرکارگر بین اونها برای یک بلندی ایستاده و به حرف کارگرها گوش میده. شما دیگه بوار روشن کنید. عزیز من اجازه بدین رئیس محمود بیاد. تکمیلا همه روشن. راست میگه دیگه یه دمی میگه سرکارگر میگه تأخیرت سرکار. تکریم ما رو روشن کنید دیگه اوسنا هم و دونه هم سواله کن سواله ایم سواله ایم چی میخواستی بشه اوسنا این گفت تیگه دل دماغ کار نداره همه رو همه کورها رو خوابوش کنید یعنی چی؟ یکی دارات پر من تارتی بده چی شده یه رویق ما رفتیم قبرستون ها آقا اوسنا این برا که پوز کنده گفت گو. گوش اومدید باش, باش گردید بیم برین ا روح حرف و که حرف نیست. ولی راستوریس کردن قضیه با من. شما امروز ها همه مهمون من بریم منخصی. ولی هیچکس کس شهر و دهاتش نمیده. تا برده ها صبح علت سر کار. یه صلوات محمود سوار میشه دو کارگر مشغول خالی کردن کارتونا از یک وانتن. محمود عصبی دنده عقب میگیره آسیه مشغول شستن زرفا سر حوزه همسر محمود رخت پهن میکنه دوتا بچهش هم توب بازی میکنند محمود سری وارد حیات میشه بی توجه از بین بچه رد میشه از زنش سراغ آقا نعیمو میگیره و همسرش با سر میگه که توی اتاق خودشه و به پشت در اتاق میرسه آقا نایین آقا آقا در قفله از همون بالا همسرش رو صدا میکنه. با اشاره میگه این نیست که همسرش هم با اشاره میگه هست در قفل کرده محمود دوباره پشت در بر میگرده آقا شما خیالتون از هر بابت راحت. اینکه خودشو به جای امین قاسم جا زده اصلا این کاره نیست. اینیه جیببار بره آسفاس اومده دنبال یه لقمه نو خودش میگه یه حده کوکش کردن آقا. از پنجره کوچیکی داخل خونه رو نگاه میکن آقا نایم. آقا به روح امین قاسم دارم راست میگم. اون سالا که خوردیم به خنسی، طرفمون کلاوردار بود این کاره بود. شما خونتو بی خود کسیف نکن. من پرونده یکی رو تا یه ساعت دیگه می‌بندم بره پیکارش. محمود ناامید از پشت در اتاق آقا این بر میگرده از پله پایین میاد و چه هنوز توی حیات تو بازی می‌کنند؟ محمود همونطور کد به دست و عصبی به طرف دیگه حیات خونه خواهرش آسیه میره. آسیه داره رختخوابش رو جمعوجور میکنه که محمود بی در وارد میشه. آسیه بی توجه به کارش ادامه میده. محمود دم در توقف میکنه. آسیه مشغول کار خودشه. محمود چادر آسیه را از جالباسی بر می داره و پرت میکنه روی آسیه که یعنی باید بری ماشین محمود جلوی آگاهی توقف میکنه پیاده میشه به سرعت میره و در رو برای آسیه باز میکنه چادر آسیه رو میگیره میکشه و اونو از ماشین پیاده میکنه بازم چادر آسیه رو میگیره و به زور میبردش توی آگاهی. با همون وضعیت از پله ها میبردش بالا دو طبقه. کشون کشون از راه رو ردش میکنه و همونطوری میبردش توی اتاق جناب سربان بی اجازه و بی زدن وارد میشن جناب سربان از این کارش جا خورده محمود خودش میشینه آسیرم وادار به نشستن میکنه بردار خودکارو بردار روی این کاغذ بنویس که این مردی که چریاده زیرش هم تعهد بده و کن که دیگه از این غلط ها نمی شما که جا کلامتر و غازی وقت میدین خب یهن این ور بشتی اینجای ما هم حکس کنی شما دنبال من بیار هر سه با هم از جا بلند میشن اما جناب سروان جلوی محمود میایسته. شما کجا رو؟ چی؟ بعد هم به خدمت شما هم میرستم آسیه رفته جناب سروان پشت سرش غوچانی جلوی پاش بلند میشه به در فلزی بازداشتگاه موقت میرسند با اشاره جناب سروان سربازی دریچش رو باز میکنه جناب سروان از آسیه میخواد که جلو بیاد و اون مرد شناسایی کنه آسیه دل تو دلش نیست آروم جلو میاد همون مردو می میبینه که با زیر پوش زرد نشسته و مشغول کارای شعبت بازی خودشه لحظه ای چشم تو چشم میشه بیدرش. فکر میکنه شاید با همبندیش که خوابه کار دارن به خاطر همین میپرسه من و آسیه در سکوت فقط نگاهش میکنه مرد که حالا روی زمین نشسته چهار دست و پا خودشو به طرف در میکشونه به درک میرسه پا میشه نیسته به آسیه نگاه میکنه آسیه هم به اون و جناب سروان منتظر واکنشی از طرف آسیه و مرده مرد مستقیم به آسیه نگاه میکنه آسیه که امیر قاسم و دیده دیگه طاقت نمیاره و به گریه میافته توی اتاق جناب سروان محمود آسیه مقابل هم جلوی میز جناب سروان نشستن تو اون آقا رو نشناختی اون آقام تو رو نشناخت اما خانوم یه چیز دیگه میگه پس باید با اون بیچاره فرصت بدیم ببینیم آسیه رو یا نه اگه مثل بچه آدم میتونی سر اجاد بشینی بشین و الا بزن بچک خنده داره شما به یه آدم کلاوردار میخوایم فرصت بدین آسیه رو بشنسه انتظار داریم بگی نمیشنسن اوچانی این ببرش پیرون داره واسه من تنین تکلیف مم. محمود از ترسش دست بسینه میشه گوچانی اشاره میکنه و سربازی امی قاسمو میاره با همون زیر زرد رنگ لحظه دمی در توقف میکنه چشمش به جمع سه نفره اونا میفته و یهو به طرف محمود میره و دستشو میگیره. سلام من تو رو میشناسم. دستم من محمود دستشو عقب میکشه و با اشاره به جناب سروان میگه بفرما. جناب سروان هم با اشاره به مرد میگه که اون نه باید زن رو شناسایی کنی. مرد به طرف آسیه میچرخه. آسیه که زربان قلبش بالا رفته میایسته. حالا رو در رو و چشم تو چشم شدن. به این وصا که بنا تازه که چیزی از کی؟ این؟ این خانم هم اره. اسمش چیز یادت نمیاد؟ من اینجا قریبم کسیو نمیشناسم. مگه تو امیر نیستی؟ آمی ها همون که عکسش تو روزنامه بود. ها ها من خودشم. بسپار تیزانویش نسی. بدونین کیه اسمش چیه. خوب نگاش کن. جناب سروان از پشت میزش بلند میشه و پیش مرد میره. امیر قاسم منم زن. به تو محمود دخالت میکنه و کشیده و نصار صورت خواهرش میباند داری بهش خط میدی؟ تو میخوای بهش بگی؟ اسمش چیه؟ م? تو مگرمی قاسم نیستی؟ اسمش این زنت هست یا نه؟ م. ها؟ م. اسمش چیه؟ بگو دیگه. کانه بردار بگو بگو دیگر سروازی میاد و محمودو میگیره و میبره آقا نعیم توی کوچه های تنگ تون تون قدم میداره و محمود که کتش روی دستشه در پیش موند. من کلی به امیرزار رو انداختم ازش خواهش و التماس کردم این با آسیه حرف بزنه دست از این دیونه بازیش برداره نرمش کنه بیاد سر خونه زندگی. آقا شما تو رو خدا به روی امیر باسین قسمتون میدم تا تنور داغ نونو بچسبونین کارو تموم کنین. نذارین حرف واژیزنم بخوره. به در حسینی رسیدن. آقا نعیم می‌خواد وارد مانش می شه که محمود مانعش میشه. آقا نئیم جسارت کردم آقا میدونم خیلی رو این کار کردین اینو بهش بدین و کار تموم کنین شمدون بلور شمدون رو توی دست آقا ناییم میذاره به سرعت دور میشه آقا نعیم حاج و واج به شمدون و راه رفته محمود نگاه میکنه و وارد حسینیه میشه امام جماعت اونجا همون روحانی پیره توی مجلس عذاست. مردم که نمازشونو خوندن یکی یکی میرن در پایان فقط آقا نعیم میمونه که شمدون بلور دستشه آسیه هم اومده اونجا و نزدیک هاج میشینه هاج در حال تسبیح انداختن صحبت میکنه شما <تصال> خواهرم غیر خدا زیر این گنبد کبود هیچی نمیدونه که آقا نعیم با شما ازدواج نکرده ما شروع گذاشتیم آقا قبول کرد اسمش گذاشت رو شما تا تو این زمونه کسی مزایمی شما نشید خودت خوب میدونی ایشون با اسم و رسم و مال و که داشت لب تر می کرد. کسی دست رد بسینش نمیزد خوب حالا هم شیره من یه سوالی دارم درسته که آدم به این همه جوان مردی و مروت پشت پا بزنه به جای شناسی بره جار بزنه که ایو هن من شوهرم گم شده درسته که پای یه مشت آدم دقل و حق بازو از ازنگ باز کنی امیر دو سال شوهر شما بوده سی سال برادر آقانه ایم اگه زنده باشه و برگرده اول اصلا باید آقا نهیمونو بشناسه پاشو همشیره پاشو بود سر زندگیت بسه دیگه بیش سال آل خون باید خونیم یه رو باید تمومش کنیم باشه همشیره بسیار خوب من دست شما رو میزارم تو دست آقا نهیم ببینم حرمت ریش سفید ما رو داریم با ایجازه یاد خداحافظ حاج میشه آقا نعیم هم اما آسیه نشسته روحانی پیر میره با خادم اونجا خداحافظی میکنه با رفتن روحانی آقا نعیم شمدون به دست میشینه میخواد حرفی به آسیه بزنه اما آسیه خیلی سرد به گوشه خیره شده چیزی نمیگه چراغونی هم می کنیم. واسه چی؟ اومدن امیرقاسم. آقا نعیم دستش شروع به لرزیدن می کنه. عصبی عصبی‌ش همدون رو فشار میده تا اینکه تا اینکه شمدون رو میشکونه. دستش زخم شده. محمود جلوی در حسینی سیگار میکشه که آقا نعیم ناراحت و ناامید با دست زخمی بیرون میاد. محمود تا آقا نعیمو رو میبینه سیگارشون میندازه و بلند میشه میسته ولی آقا نعیم دیده محمود از نگاه قیزالود و ناامید و عصبی آقا نعیم میفهمه که نتیجه منفی بوده آقا نعیم میره و چیزی از توی دستش میندازه. محمود بلافاصله دلا میشه برش میداره یه تیکه شیشه خونی آسیه تنها در پیاده رو راه میره به باجه تلفن همگانی میرسه داخل میشه و شماره اینو الو خوابگاه دانشجوی افسانه رحیمی لطفا خوابگاه دانشجوی الو سلام همون ممنون من خوبم فردا صبح ما من فردا دارم بابا کی برگشته؟ بابا امیر قاسم خودت دیدیش؟ با چشای خودت دیدی؟ حالا حتما همین فردا باید ببینه دخترش چقدر بزرگ شده باشه ما یه کارش میکنم فردا شیشم حرکت کنم زودت هست. هش نمیرسم دختر نمیتونه ادامه بده و گوشی رو میذاره سر جاش و در فکر به اتاقش برمیگرده همسر محمود سفره شام آماده کرده بچه ها رو خوابونده اونا رو میبوسه و سر سفره میاد. همه چیز آماده است پارچه دوغ دوتا پیشدستی سبزی نون و باشخان بیا میره تا غذا رو بیاره چادرشو روی جالباسی میذاره توی آشپزخونه میره و با سینی برنج برمیگرده و پای صفره میشینه پوشو بیا دیگه. محمود اما جلوی پنجره لم داده و سیگار میکشه و توی فکر محمود توکل کن فردام روز خداست یه طوری میشه دیگه محمود پشت میز کار نشسته و تعدادی کارگر جلوی میز صف کرده محمود کاغذی رو مهر میکنه و دست کارگر اولی. تو شما کار دیگه یعنی شما؟ تو چی میاد؟ شش مسلم. میسان. میسان میسان میسان. یه بیرون. میبینی میبینی من نمی‌نامم. من بیرون بیا. من نگفتم رو افرادی که سرپنازنن. امروز چنینی؟ معلوم است که محمود چی بسیار اندکتی. دری کار میکنی مرد سبی؟ آقا من غلط کردم گفتم اینجا رو را میندزم نتونستم به خدا نتونستم آقا این این جواب سلام منم نمیده. چه برسته به اینکه بخواد بیا چرخ اینجا رو به چرخونه. به خدا حال و روز خوشی نداره. تا همین الانشم هم سکه نکرده شانس آورده. نه آقا محمود. حرف نون زنه بچه‌ این هم آدمه. کارخونه قانون داره. مگه حواسی هر و خاصی باز کنی، نخواسی تختش کنی؟ مرد استوری جریمهشو میدم. حق و به کنار دولا پناه حساب میکنم. اصلا هر کار تو بگی میکنم. نمیشه آقا محمود. نه پولتو میخوام نه تو. اینجا باید راه بیفته. همینو بس. محمود با سرکارگر دست به یقه میشه کارگرها قصد دارن جداشون کنن همین کار میکنن آسیه سر کمد لباسیش رفته و توی کمد دنبال لباسی میگرده پیدا میکنه لباسی بلند و سفید با گلهای ریز لباسو جلوی خودش میگیره و توی آینه نگاه میکنه لباس با چوب لباسیش به دستگیره در کمد آبیزون میکنه و سراغ صندوقچهی میره. درشو باز میکنه. دنبال چیزی میگرده. بله. روسری قرمز با طرح بط جرقه. حالا لباسشو پوشیده روسری رو سر کرده و توی آینه کوچیک گرد خودشو نگاه میکنه. گره روسریشو سفت میکنه. توی فکره. ساعت مچی از روی میز بر میداره. ظاهرا ساعت مال امیر قاسم مرد همسر محمود تا دو سر کرده میخواد در رو باز کنه که آسیه دوان دوان خودشو به اون میرسونه و میگیره همسر محمود آسیه رو که میخواست در رو باز کنه نگه میداره و نگاهی به لباسش میکنه آسیه پرده آبی جلوی درو رو کنار میزنه و خندان در رو باز میکنه آقا نعیمه دخترش نیست خنده روی لب آسیه خشک میشه به هم نگاهی میکنه آسیه پرده آبی رو دور خودش میپیچه و از آقا نعیم رو میگیره آقا نعیم سر به زیر میندازه. آقا نعیم دست مجروحش رو باند بیچی کرده مرد شعبد باز و برای سیتی اسکن روی دستگاه خوابوندن تخت در حال ورود به دستگاهه که یه هم میترسه نباشی. نترسی. نترسی. نباشی. نگران نباشید نه ترسید نه ترسید نگران نباشید هیچ نگران نباشید الان تموم شی. حرکت نکن آقا نه ترس حرکت نکن آقا متصدی آرومش می‌خوابه میخابوندش دکمه رو میزنه بالاخره آروم میشه و متصدی مشغول کارش میشه دستگاه به کار حالا دکتر نتیجه سی تی اسکن مغز رو در حضور جناب سروان بررسی میکنه جلوی نور گرفته و چک میکنه ترومه تشخیص من اینه ترومه چیه؟ یعنی ترومه مغزی؟ نه بیمار احتمالا سالها پیش دوچار ضربه مغزی شد و قسمتی از حافظش رو از بست داده دکتر بازم نگاهی به نتایجی میدازه جناب سروان دنبال راه حلیه دکتر جان. بیا آزمایش خونم بگیر. وزیتش رو سویت می‌خوام. شد یکی دیگه مونده. چی دیگه مونده؟ آسیه چادری خاکستری به سر داره و در خیابان منتظره. نگاهی به ساعتش میکنه خوشحاله. تاکسی نارنجی از راه میرسه و دخترش افسانه از اون پیاده میشه. میریم تری افسانه میشینه توی این ماشین و خودشم سوار تاکسی میشه تاکسی راه میفته آسیه خوشحال و امیدوار به خیابون نگاه میکنه و افسانه مقموم به مادرش نگاه میکنه سکوتی عجیب بین مادر و دختر حکم فرما شده هیچ حرفی نمیزنه حالا مادر و دختر در حضور جناب سروان جلوی میزش ایستادن جناب سروان حرفی نمیزنه ترس نگران و مستره بند گوچانی پیانه وقت برد جمعه مادر و دختر رو به بیرون هدایت میکنه کوچانی احترام نظامی میذاره و خارج میشه در بازداشگاه موقت افسانه به مرد یا پدرش نزدیک میشه آسیه همراشه هم دست هم دیگر رو گرفتن آسیه دل تو دلش نیست نفسش به شماره افتاده مرد هم اینطور افسانه کمی نزدیک میشه دخترتونه دخترمون مون راست میگی یادتر چنا دو موقع بودم همش میگفت کی باورم نمیشه بابا شده باشم انگار دارم خواب میبینم برای همینم هم گفتی اگه دختر شد اسمشو بذاریم افسانه افزان. افزانه... افسانه ای که رسخه میره و پیرهنشو میپوشه از توی کیفش دستگلی در میاره و توی پیرهنش میذاره آسیه خندان و افسانه متعجب نگاش میکنند مرد آماده شده روسری رنگی از توی کیف برمی داره جلوی مادر و دختر رو سری رو حرکت میده توی هوا روی دستش میدازه پیف پاف دست گلو مثلا ظاهر مادر و دختر باز هم در حضور جناب سروان توی اتاق میزی ایستادن. مدتی باز به سپوت می‌گذرد. دیگه چتونه؟ چطور؟ شما چتونه؟ لا اله الا الله. تخسیری از من سرزده؟ از امیر خواستم سرزده؟ واسه چی نگارش داشتین؟ دخترم، همین الان میری بیمارستان فارابی پیش دکتر افخمی. میگه منو جناب سروان فرستاده درباره همون آزمایش خون غریبه. همین الان میری باشه؟ خاله تا آدم تا این حووییت من نمیتونم کاری کنم ما گفته باشم تا صبحم اینجا وایسی گوچانی مدام آرد جناب سروان با دست مادر و دختر رو ببیرون راهنمایی نمایی میکن اوچانی گوچانی این ازاری نعیم چی شد فردا صادر میشه اوه تا فردا یه تیک کاغذ رئیس چوبه رفته ماموریت؟ اینجا شده مسافرخونه محل پذیرایی از میمونای خانوادگی گوچانی اهزاریه بی همی ال این مرد و کت بسته بر میبری پیش نعیم رو در روشون میکنی همونجا یه سورت جلسه تنظیم میکنی میگی پاش امضا کنه تا امضا نکرده بر نمیگردی یا چا؟ چسب؟ گوچانی مچه دست مرد غریبه رو گرفته و توی کوچه راه میرن به در خونه رسیدن. گوچانی مچ دست مرد رو رها می و زنگ میزنه. مرد آروم و قرار نداره مدام جا, جا میشه تا اینکه محمود در باز میکنه. اینو چنو برداشتیم بردی اینجا به چیه حکم ورود حکم ورود چی آبرو ریزی نکن بابا ای بابا سب کن یالله بابا سب کن من درم به توی گنیم مرده چنو برداشتیم بردی تو حکم من نشون میدی تموم شد نه خیر بله حتا آقا نایم کجا آقا نایم چیکار کار داری ساب کن سرکار استبر کن بابا. وسات هایوت می‌یستن. آسیه و همسر محمود و بچه هم میاد. خودت من، من، یه لحظه این در باز کن، نگاه بریخته این آدم بنداز پایین صورت جلسه رو هم کن، بذار همه چی به خیر خوشی تموم شه. کوچانی پشت در آوتاق آنایی. آقا شما بزرگی احترامت واجب اما من برم فردا به حکم دادگاه میان میبرنه. این بهتره یا اون آقا نایم بیا اینجا یه خط بنویس که این آقا برادر من نیست پاشو امزه کن تمومشه بره جوابی نیست لب پنجره میاد و از بالا با محمود صحبت میکنه گفته باشم فردا نگید نگفتینا ببین اگر معمور از دادگاه با حکم بیاد میاد در اتاق میشکنه دستبند دست میزنه ورش می میبره کلانتری جلو در همسا ها بره میره یا پایین بابا به چه گندی زدی یارو رفت تو؟ محمود سیگاری به لب گذاشته و کنار حوزه ایستاده. گوچانی برمیگرده پشت در اتاق آنایی. خبری نیست. از پلا پایین میره. توی پلا به محمود بر میخوره. محمود اتاق آسیه رو نشون میده که مرد غریب رفته اون کوچانی یهو در اتاق باز میکنه. اتاق پر دوده آسیه برای مرد یا امیرقاسم که داره میوه میخوره اسفند دود کرده و دور سرش میچرخونه آسیه سینی چای هم برای مرد میاره مرد بلند میشه و سینی چایو میگیره هر دو میشینه مرد خورما تارف میکنه به آسیه آسیه بر میداره یه استکان چای هم به آسیه میده وقچانی کفشه شو در میاره و وارد خونه میشه. امیر قاسم فرار میکنه و آسی بین اونها حائل میشه. محمودم میاد تو. آقا، کارمون شده بده بریم. بریم شما هم بفرمایید، همه چی هست. خلاصو بریم، ماموریتو بدین. شما میهمنیه بازی گرفتی؟ ببین. چه نمیخوای؟ این یارو کلی زحمت کشته خودش رو رسونده به اینجا. تو فکر کردی با ارد جناواری از جو تکون میخوره؟ <تصفيق> ی باره بیروندی نداری چی؟ یه بار خونامونه یه باره بی یه باره خونامونه حالا به فامینی باشم یه من یه من سرکار استوار برو به رئیست بگو این یروایی کلا بردار نیست چطور زنیشونه میشنه سه آدمارن اما سه همه خونشون میشنه سه اوتارشون میشنه <تصفيق> نگاهی به آسیا، امیر قاسم میندازه و میره. مرد درسیده. روحانی پیر جناب سروان و قوچانی در کنار محمود و مرد غریبه توی اتاق آقا نعیم نشستن خدا آقا نعیم نیست افثانه میاد با با جلسه یعنی تب دستورتون تنظیم شد سلام دخترم بشی سلام بشی علیکم سلام سلام بابا جم بشی دیگه دویجا کن این سورت جلسه برای شما تنظیم شده دقیقت کن بله با خب پس قبول داری که به علت ضربه مغزی فراموشی و یا به هر دلیل دیگه اون خانم و دخترشو نشناختی من هم اول گفتم پس این صورتجلسه جلسه رو امضا کن اینجا رو؟ بله اینجا رو فقط همینه؟ شما بفرما اگه لازم شد من صداد بکنم او باشه خداحافظ خداحافظ آها. ما با حاج آقا دست می‌ده. اوچانی با محمود. اوچانی موچه مرد رو میگیره و بلند میشه. هر دو بیرون. میره. جناب سروان با سر به محمود اشاره میکنه که آقا نعیم میاد. محمود توی اتاق دیگه میره که آقا نعیم مغموم زانو به بغل نشسته. بغلش میشینه. آقا جان بسم الله مردک رفت هر دو بلند میشن به اتاق دیگه میان همه جلوی پای آقا بلند میشن آقا نعیم همه رو دعوت به می نشستن می همه میشین سلام آمون جناب سرمان سورا جلسه رو به روحانی پیر میگه روحانی هم به آقا نعیم آقا نعیم با دست مجروح سوره جلسه امضا میکنه و میده به روحانی پیر. روحانی هم اونو میده به جناب سروان جناب سروان سوره جلسه رو به محمود میده برای امضا. محمود هم سریع امضا میکنه. بعد محمود سوره جلسه رو به افسانه میده برای امضا. کوچانی و مرد در حضور آسیهنی حیات با همدیگه می بحث میکنن. ایشون خودش میخواست از این سد بتالن مال بفرمایید که ما را کی به شما گفته؟ بالا بودیم خانم. این همه آدم اونجا بود از خود این آقای امضا کجا میری؟ ایشون خودشون بالا رو بالا صورت امضا کردن که رضایت دادن که از این خوره برن بیرون. ایشون از اینجا شا... نمیریم بیرون. شو... امضا کن دیگه جان. امضا کن. افسانه مرددی. محمود افسانه نزدیک امضا کن دیگه. از قول غزی میشه بره امضا کن افسانه امضا نمی کنه بلند میشه میره جلوی آقا نعیم میشه اموجو شما چطور بخواهتون اجازه میدین راجب سن نوشته من مامانم تصمیم بگیره منم واسط یه حقی دارم حق ندارم بابای خودمو بشناسم مگه ما امروز از واسه خون نداریم حتی قصد کنید تا فردا ببینیم جواب رو از مایش چی میشه آقا نعیم نگاهی به جناب سروان روحانی میکنه اونا هم نگاهشون رو از اون میگیره. به همدیگی نگاهی میکنه مخالفتی ندارم آقا نعیم بلند میشه و میه. محمود عصبی میشه نمیشه که آدم مجبور میکنین هفت قفل قفلو بشکنه با هزار زحمت آقا نعیمو از تو پستو بکشه بیرون قول میدین بیاد زیر برگر امضا کنه قال قضیه کنده است درست وقتی که همه چی داره به خیر و خوشی تموم میشه میزنن زیر قول و قراره درست نیست که بابا دیگه بجا جا. روحانی و جناب سروان از جا بلند میشن بدون حرفی میره فواره توی حوز بازه آسیه با سینی سبحانه از توی آشپزخونه بیرون میاد دم اتاق میرسه. دم پایش رو در میاره و وارد اتاق میشه. امیرقاسم خوابه آسیه سینی رو بغل سفره میذاره. نون که تو سفره هست، گوری چای، یه جفت نان، مربا دونو، کره و پنیر. امیرقاسم چشم باز میکنه. سلام سلام با عجب سارغی خاموش ماله منه بله یه تیکه نون برمی‌داره آسی از دستش می‌گیره اوللسو صورت چاش مرد نگاهی می‌کنه و باز هم چهار دست و پا به طرف در می‌ره حالا وارد حیات شده میدوه پای حوز و دستشو توی آب حوز میزنه و برای رفع تکلیف صورتشو خیص میکنه و میدوه توی اتاق پیرنت پیرن؟ آره ببوش امیقاسم دنبال جایی برای تحویز لباس میگرده بالاخره میره توی پستو و آسیه دم پستو با قاسم حرف میزنه این پیرانو یادت نمیاد؟ نه اینو اون موقع که رفتی سفر برات گرفتم سفر؟ آره آسیه پاچه قهوهی رو تا میکنه من و این پیران 20 سال منتظر امروز بودیم 20 سال وی قدیم میده ثابوت بخوریم خوشحال پای سفره می‌شینه و لغمه می‌گیره و در دهان میذاره آسیه هم کنارش میشینه آسیه چای میزت توی استکان امیر قاسم اونم با سر تشکر میکنه و میره سراغ کیفش یه حامی چشمو واتساپ میام تا حالا تو عمرت ندی خبر سوگمه باش آسیه ولن میشه امیر قاسمم اومدم منو ببر از چی میترسی من اینجا کسیو نمیشناسم من که تو رو میشناسم کس تو کسیو به خاطر تو پشت در مردی کوتاه قامت با کت و شلوار سرمه‌ای پیرهن یقه پهن و دستمال گردن قرمز و موهای شونه کرده که پشت کفششو خابونده ایستاده من با جناب امیر قاسم رحیمی کار دارم تشریف دارم؟ شما؟ من دوستشون هستم اون سالهایی که گم شده بود من پیشش بودم من بهش کمک کردم که خونش رو پیدا کنه بفرمی مستقید. مرد وارد میشه مرد دست در جیب جلو راه میوفته و آسیه پشت سرش. به تاقی انتهای راه روی کوچیک میرسد. حالا آسیه جلوتر میره و مرد پشت سرش. مرد چرخی توی حیات میزنه و از دیدن بزرگی و عظمت اونجا لذت میبره و حسرت میخوره. در همین حین محمود با بلوز و شلوار خونه و دمپایی از خونش بیرون میاد که چشمش به این تازه وارد میاد. سلام تو با شما کار دارم. با من. ها ها ای تو خودتیم امیر قاسمیم امیر قاسم آردی که فداشیم این خودشه بله برویم تو بله بریم امیر قاسم میبینی چجایی کشته؟ اگه بشه من اینجا نگاه خیلی خوبه بیا بیا تو سوولم از بیا حالا امیر قاسم و مرد تازه وارد توی آتاقان و عاسی و محمود بیرون. از پنجره وضعیت بیرون رو بررسی میکنه دنبال چی هستی؟ چیزی میخوایی؟ مرد داخل پسو هم سرک میکشه آکه تو کار دوستایی تو نبیری اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بزنیم اصطحه خال آتا دیگه جی عزی خیلی نخواب حالا سهم منو رد کن بیاد که ما رخصیم داره تمام میشه واسی برگردم زندوم من؟ سهم چی؟ کشک چی؟ گذاشتی رفتی؟ میدونی چقدر مصیبت کشیدم تو از اینجا در اوردا؟ من اینجا قریبی تنها گذاشتی رفتی؟ ول کردیم و خالا سهم میخوای؟ تو واس خواته زدی به زبون نفهمه که ما رو سیا کنی کل خراب من؟ من نمیزرم تشخوری کنی مگه ما با هم قرار نزاشتیم که اگه زدیم و کارمون گرفت هوای هم رو داشته باشیم اه ها آه، آها آه. شد حرف حساب من اینجا با رئیس کلندتری رفیف شدم سفارش تو میکنم از حفظت کم کنم خرش میره حسابی واسه من خلو چلبازی در نیار کل خراب مگه من خودم الهامیه رو نشونت ندادم مگه قرار نشد که اگه جنابالی شدی امیرخسن دستمارم بگیری اگه اون کله خرابت کار کنه بهت گفتم اگه لقمش چرب بود حقو حساب منم چی رد کنی بیاد وگرنه لوت میدم برگردی همون جایی که بودیا حالشو کدوم رغبن چرب چی میگی من هزار پول برگشتن تو جیبم ندارم اگه این خانوم مهربان نبود هنوزم ویلون سیلون بودم امیر قاسم مرد و پرت میکنه بیرون رو در میشکنه سینگه چای هم از دست آسیه میده احالی خونه هم سریع جمع میشن امیر قاسم بالای سر مرد میاد که سرش خونی شده و بازوش درده همسر محمود به آسیه کمک میکنه تکیه های استکان شکسته رو جمع کنه امیر قاسمم به مرد کمک میکنه که بلند شه. محمود عصبیه از بین جمعیت رد میشه توی آشپزخونه میره و با موبایلش شماره میگیره و شروع به صحبت میکنه باشه حالا که خودت خواستی منم لط میدم این آقا اسمش کل خرابه اصلا نمیدون امیر قاسم کیه من اون اعلامیه رو تو زندون دیدم اکسو بهش نشون دادم بهش گفتم نقشه از من اجرا از تو آقا دوچار فراموشیه دروغ میگه من یادم میان البته هرچیری که به نفعش باش و دلش بخواد این راست میگه اکس به نشونم داد و چطور رو نقشه که با هم کشیدیم یادت رفته ها دروغ میگه کدوم نقشه رخش... شما برو کابجی چنانه نمیذاری حرفش رو تا تا بزنه ما که نفهمیدیم کجاش راسته کجاش برو بیرون. ایداد ایداد وای صدیکه خیلی خوب همشیره دارم میرم دیگه وای وای چرا بایستدی؟ خیلی خب همشیر رو به زیاب سر کلام بزنیم خب بابا تو که نزاشتی بارمون برش شادی اومد حرف بزنه مزرد. حتی اقل بزن کلم مادر عروس بگه بگو عزیزم بگو یالله بابا سب کن دیگه ها آسیه پشت کت مردم میگیره و بلندش میکنه و به طرف در میوردش با صدای زنگ مرد که با آسیه پشت در رسیدن میترسه آسیه چادرشو درست میکنه سلام کنم بفرمید سلامای کنم بفرمید سلامای سلام بفرمید کنم سلامای کنم بخودم شایکی همه چونجا همه چی چی کاریم تو یا الله شما تشریف بیاری تمرا من به چند تو سوال جواب هست بله بفرمی تمرا من بید بذاری تر بذاری کفشم و یا الله در حین پوشیدن کفش سرواز دستبند به دست امیرقاسم آسم می زنه افثانه نگران نگاه کجا؟ کجا بفن میکنم کجا میبرینش؟ بفن بفهم کنم جناب سروازم بیگونا ما با, با هم نفسو کشه هیم امیر قاسم و مرد هر دو دست بند به دست رو به روی هم جلوی میز جناب سروان توی کلانتری نشستن جناب سروان پرونده رو بررسی میکنه لحظه دست از کار میکشه و اینکش رو در میاره تو دیگه کی هستی؟ ما تو زندون با هم بودیم سر تو بیاروالا، وکبه چیه؟ عبدیم پس اینجا چه غلطی میکنیم؟ ما شده گمشدر که تو روزنامه دیدیم با هم قرار گذاشتیم که بیایم اینجا. تو. من این همونی که آوردت اینجا سنگ مفر گنجشک مفر اینا اتهام تو اخاذیه اتهام تو هم کلا برداری قبول داری ولی جناب من،, من خودم اقرار کردم من تازه اقرار کردم از روز اول گفتم تو نه؟ دیگه داری کلافم می‌کنی هرچی میگه قبول داری می‌نویسی امضا می‌کنی این دروغو به خدا سرکار تو خودت گفتی زودتر از این اقرار کردی اینا عکس نشون دادن گفتن این جوی ای من عکسو دیدم توی خودشه بعد فرگوشی من اونجا اینجا حالا من باید بهش پول بدم تازه من قرارمون همین نبود. ما با هم صحبت نکردیم. یادم میاد بیرون جناب سردارون گوشی تلفن رو بلند و شماره اینه. سلیمانیام دکتر. پس نتیجه این آزمایش چی شد؟ مگه قرار نبود زودتر از این جوابشو رو من بدی؟ تو شیفته تو مرکز استان روش کار کردن. یک طورا جوابم تو راه جواب نیم ساعت دیگه رو میذارم. آسیه چادر مشکی به سر داره و تونتون توی کوچه قدیمی راه میره. به حسینیه میرسه. وارد میشه آقا همون روحانی پیر سر حوز کوچیکی داره ووضوعو میگیره. آسیه از پله های حسینی پایین میاد و رد میشه. یه لحظه حاجقا رو نمی اما بعد متوجه میشه و میاد پیشش. دیگه چی شده؟ برای انقاسم پاپوش دختن. سر کله یه نفر پیدا شده که میگه تو با هم نقشه کشیدیم می خانقا در کنیم دوباره اومدن بردنش تری. مس سر میکشه و فکر مسه حدو پا می که و حالا اونو که الان سرش رو نمی برند شما بر رو نماز تو بخون تا ببینیم بعد از نماز چه میشه؟ خدم حسینی عوا و امامه مشکی حاجقا رو می حاجغ میگیره اما برو سر میذاه و عوا رو می پوشه آسی هم برای نماز به قسمت زنونه میری جناب سروان پوشه به دست از اتاقش بیر سربازی احترام نظامی میزه جناب سروان یه طبقه پایین. به جایی که امیر قاسم دست به دست روی صندلی نشسته و دستاشو به هم میماله و محمود در کنار استواری مشغول نوشن شکایتنامه است استوار به محض دیدن سروان از جاش بلند میشه حاجاها و آسیه به کلانتری اومدن بفرمید شکایتش که تنظیم شد میذاری رو پرونده می‌خوام برم می‌ذارم بری با اون مرتی کولاورداره دات سرا. قصه‌ی منم بگو بیارم بالا. سلام. آمدر. سلام آقا. عرضی داشتم. اومیزه بفرما بش. خوش شد اومدی. می‌خوای برات بازیشو انجام بوشم به جای من خودم انجام می‌دم. من. سنسا اومیزه فرمایش. اومدم اگه من برم تا قبول داری ریسک رو بذارم تا تکلیف این ماجرا مشخص بشه آزادش کنم. این که تکلیفش معلوم آقا. یا همدست اون مرتیکی کولاورداره یا حالت دسته. شما که اینقدر بدبین نبودی چی شده اینجوری قضاوت می‌کنی نامیرزا رفیق ایشون که به واشخایی حق و سکوت اعتراف کرد خودش هم همینطور حالا یا با اختیار که میشه هم دستش یا کی شده آلتی دستش شاید همین تخمه تهمت افترا باشه خودش باوش بروز کرده نه حاجی نه کفوش نیست ملاحظه بفرمایید در آخر جواب و آزمایش که منتظرش بودیم رسید منفیه حاجی منفیه شکایت نامه که تنظیم شد میزاریم می رو پرونده میفرستیم دادسرا دیگه هرچی قاضی کرد. هدج آقا دیگه حرفی برای گفتن نداره. جناب سروان جواب رو توی پاکتش میزاره و آسیه خیره نگاه میکنه و حرفی نمیزنه. محمود خوشحال شکایت نامه رو تموم میکنه و به دست جناب سروان میده. محمود میخواست مثل همیشه چادر آسیه رو بگیره و بکشدش اما اینبار آسیه اونو هل داد و محمود زمین خورد. هدج هم خود برید که آسیه میگیره و متوقفش میکنه. من امیر خواستم از شما میخواهم نمیخواستم رو نگاه میکنه هاج اقا بر میگرده و باکت جواب آزمایشو از ریناب سربان میگیره همشیره مکه نشنیری جواب آزمایش منفیه این یعنی چی پسه سند و مدرک به چه دردی میخوره سند و مدرک ملوم کسیه که شک داره من با چشای خودم دارم امیر قاسم رو میبینم آج با نگاه از جناب سروان کسب تکلیف می‌کنه. امیر قاسم یا همون مرد غریب هم منتظر نتیجه است جناب سروان شکایت نامه ای که محمود نوشته رو بر و جلوی میز میاد اگه نیم این شکایتش رو بگیره شاد به کاری کرد. محمود که هنوز رو زمینه هرس میخونه بچه ها توی حیات خونه توبازی میکنه آسیه پشت پنجره اتاقش ایستاده و خیره بیرون مگاه میکنه توپ بچه ها از جلو پنجره رد میشه آسیه تو فکره صدای ضربه زدن به توپ توی سر آسیه میپیچه یه بار. دوبار سه بار. این صدا تبدیل به صدای حرکت قطار میشه آسیه تو. آسیه چادر مشکی به سر روی ریل قطار راه میره قطاری از دور میرسه بوغ میزنه به آسیه میرسه و دیگه آسیه رو نمیبینیم قطار عبور میکنه آسیه چی شد؟ قطار همچنان در حرکته قطار رد میشه و ما اثری از آسیه نمیبینیم شب شده روحانی پیر با عصا از کوچه باریکی عبور میکنه و در خونه خانواده رحیمی میرسه سایه همسر محمود رو که چادرش رو برداره حالا در اتاق باز میکنه بیرون میاد و سمت در حیات رو سلام علیکم آمیرزا علیکم السلام آنه این تشیف دارن بله ولی بله نمیدونم جاها وارد میشه همسر محمود متعجب نگاش میکنه و در رو میبنده محمود توی اتاق آقا نعیمه سر قفصه دنبال چیزی میگرده گلدان آبی رو سر جاش میزه حباب لوستری رو برمیداره میاد کنار آقا نعیم که داره لامپ لوستر رو میبنده میشینه و حباب و تمیز میکنه آقا نعیم لامپ سفت میکنه و حبابی رو برمیده بفرمیم سلام علي. آمیزا. اومدم فقط یه جمله بگم و برم. این زن اونقدر جدی و محکم حرف میزنه که آدم باورش میشه داره راست میکه میترسم اگه اینجوری مقابلش وایسی میگه برای سر خودش بیاره آقا نعیم به فکر فرو میره محمودم به اونا میپیونده بابا آقا آقا نعیم جلو دهن محمود میگیره آمی روزه قصد رفتن می ای کاش، یه از باوری که این زن به مردش داره ما به خدا که هیچ به خودمون داشت. میگه و میره چی میگه آقا چیزی نمیگه مثل اینکه که حالش آبای. اصلا خوب نیست آقا آقا, آقا نایم داره که محمود یه میگیرتش روز بعد آسیه صحیح و سالم توی اتاقشه پس اتفاقی می ده ده. لباس سبزی پوشیده روسری مشکیشو توی آینه گرد کوچیک درست میکنه چادر مشکیشم از روی در کمد بر میداره آینه کمد دیده میشه چادر رو میدزه دورش و خودشو توی آینه کمد نگاه میکنه آسیه از در خونه میاد بیرون روبروی حوز که ماهی هایی توی اون شناورن میسته پایه میشه دو دستش رو تا مچ توی آب فرو بکن حالا از پله های اتاق آقا نعیم بالا می از روی فرش باریک قرمز رد میشه آقا که ناخوشه روی دوشک خوابه ده. محمود پتور رو از روی پاهای آقا نعیم کلا مقداری آب توی تشت میگذن آسیه وارد اتاق میشه محمود خشمگین به آسیه نگاه میکنه نگاهی به آقا نعیم انگار که میخواد به آسیه بگه این حال اون تقصیر توه آسیه میاد تو محمود بلند میشه و مقابلش میسته آسیه با سر به محمود اشاره میکنه که برو بیرون هر دو لحظه ای با آقا نعیم که دراز کشیده نگاهی میکنه محمود از آسیه جدا میشه و آروم آروم به طرف در میره آسیه میره بالای سر آقا نعیم میشینه و محمود میره و در رو میبنده کاسه آبی بالا سر آقا نعیمه که توشه آسیه کاسه رو بر و پارچهی توی اونو میچه و باز میسیم کن چشه مرد به برادرش تهمت زدن و گفتن شعیاده مرد همینطور ساکت مونده و کرد برای برادری که 20 سال گم شده بود باید چراغونی میکرد اما در رو خودش بست و خودش رو تو بست و کرد آقا نعیم برادرت ضربه به سرش خورده که چیزی یادش نمیاد شما چه بلایی سرت اومده که چیزی یادت نمیاد باشه شما برادر تو آزاد کن بفرستش بره تاوانشو من میدم آقا نعیم که سند خونه دستشه توی کوچه راه میره محمود با لباس خونه از در خونه بیرون میاد دنبالش دمپایش در میاد آقا نعیم بی توجه میره محمود برمیگرده دمپایشو میپوشه می, می و دوباره دنبال آقا نه این راه می توشه. آقا سب کنی کارتون آقا کارتون دارم سب کنی آقا نه این آقا خواب دارم می بینم بیدارم زبونم لار چیکار بکنید آقا جان اینجوری که شما دارین آتیش بیزنیم به دار و ندارمون این غریبه رو ول بیاد موه دماغ بشه تو در و همسایه نمیتونیم سر بالا کنیم آقا هیچی نداشتیم آقا رو که داشتیم خونه خراب بشیم آقا آقا نهیم آقا نه. آقا جان یه لحظه باشتیم اینی من چی میگم آقا آقا جان آقا رسوایی بار میاد فکرشو کردیم رس من تا حالا اگه شوهر عاصی نبودم لاقل اسمی داشتم که سایه سرش باشه. خواهرت با من کاری کرده که دیگه چیزی از نمیم نمونده که بخواد براش بفکر اسمو اسپور رسویی باشه. میگه او وارد کنان تل میشه. محمودم همونجا روی پولهاش. امیل قاسم همچنان دست بند به دست پشت میز کنار صاحب نشسته. بهت وقت دادم دیگه نمیتونم برات کاری کنم. با برید داد سرا چش. سند به دست ورده میشه. بفرمایین به جناب سروان پشت میز کار خودش میره و علی قاسم متعجب به اون نگاه میکنه. سند آقای نعیم سند رو به دست جناب سروان میره این شکایت نام آقا جناب سروان چیزی می توی این برگه درخواست آزادی اسمشه چی بنویسم؟ امیر قاسم پس شما رو چی بنویسم؟ برادر آقا نیم جوابی نداره سکوت میکنه در سکوت به مرد نگاه میکنه یعنی واقعا برادر مرد آروم نیم و صدا میکنه. جناب سرمان که اینکشو در آورده بود به چشم میذاره و روی کاغذ چیزی بود مرد آروم پیش نعیم میاد دستمالی جیب پیرهنش در میاره و عرق رو خشک میکنه حالا میخواد شعبت بازی کنه دستمالو جلوی نعیم تکون میده پشت رو میکنه که نشون بده خالیه دستاشو نشون میده که چیزی توش نیست دستمالو کف دست چر با دست راست از توی هوا چیزی خیالی میگیره و توی دست چپ و بین دستمان مال میزره ادیس حالا از بین دستمال همون آب کچی قلبی شکل تو گردنی آسیه رو بیرون میاره و جلوی آقا نهیم میگیره بازداشتگاه موقت امیرقاسم روی تخت نشسته و با دست بند دستش بازی میکنه اونو به هم میسابه و میخواد با شعبد بازی بازش کنه هم دستش همون همبنده هم روی تخت بغری نشسته قاطی باتی مشنگ نکن اصابم خورد شد نکن کلافم کردی نکن به رویم نکن را بیش با همین الانگوها خفت میکنم و... به پیشونیش میکن و اون دمه در بازش میده ببین آقای سرباز گروه با هر کسی که هستی پوش به ببین چی میگن یا بیا منو ببر دادسرا یا منو آتیش هم بزن یا بیا دستبند اینو واکن، کن منو از دست این نجات بده داد نندن رات نمیدن دادسرا برو بش گچانی دم بازداشتگاه میام امیر قاسم میاد دم در این سبا بیان ببین، اگه تو خود سوغم هم که همه جوری چرور بگی عمرن اگه بتونین این دستبندو کور کنین کورخوندی اینی مزبی سی مترش تیر <تصفيق> زمینه شما من؟ بلی گوچانی میگه دستتو بیار بالا مرد هم دستاشو بالا میاره و قوچانی دستبند رو باز میکنه مرد هم پیروز مندانه دور خودش میچرخه و اینجوری وانه بود میکنه که ورد من باعث باز شدن دستبند شده گوچانی در رو باز میکنه ایشون آزاد شد ظاهرن بعد چی آزاد کردیشونو؟ ما خودمونم که کارهای نیمجبی موندیم تا... تا... آقا نئیم از کلانتری برگشته توی کوچه خودشون نزدیک خونه که میرسه ازدهام مردان و دم در خونه میبینه کنجکاو و نگران نزدیک میشه وارد خونه میشه زنی پشت سرش میاد تو چند زن توی حیات خونه دم اتاق آسیه ایستادن و چیزی رو نگاه میکنن جلوتر میره آسیه دم اتاقش ایستاده و برای زنا شعبده بازی میکنه دستمال زردی رو توی هوا تکون میده دستش رو مشت میکنه و دستمال رو توی دستش فرو میبره و قیبش میکنه بچه های محمود زوغ میکنن همسر محمود ناراحت و شرمنده به آقا نعیم نگاهی میکنه آقا نعیم نزدیکتر میشه کیف مرد شبه باز یا امیر قاسم روی دوش آسی است روسری رنگی از توی کیف در میاره باز توی هوا نشون همه میده و از داخل اون دست گلی در میاره نفذانه همونجاست ناراحته آسیه دستگل رو به پسر محمود میده و رو سریو به همسر محمود آسیه از این کار خودش خوشحاله آقا نعیم مقموم به آسیه نگاه میکنه ایستگاه راهن قطار به حرکت در میاد امیل قاسم یا مرد شبهد باز یا کلاش یا ساده نمیدونم توی قطاره گوچانی که پای قطاره براش دست تکن میده مرد هم شادمانه چند بار برای قوچانی دست تکن میده و قطار می آسایشگاه بیماران روانی بوالی بنز قدیمی قهوهی محمود جلوی در آسایشگاه توقف میکنه آسی هم توی ماشین عقب نشسته نگهبان در رو برای اونها باز میکنه و محمود با ماشین وارد محبت آسایشگاه میشه نگهبان در رو میبند محمود جلوی ساختمان اصلی آسایشگاه توخف میکنه آسیه پیاده میشه و میره توی ساختمان محمود توی ماشین آقا نعیم به کارگاه شیشه و بلورسازی اومده کارگره و محمود جلوی در منتظرش بوده سلام آقا آقا نیم که لباس کار پوشیده قطعه شیشه ای رو توی کوره میذاره قطعه رو از توی کوره در میاره و روی چارپایه میذاره سراغ کتش میره و دستمالی رو در میاره که عرقش رو پاک بکنه که یهو همون قاب کوچیک قلبی شکل تو گردنی از لای دستمال به زمین میفته دلا میشه از رو زمین برش میداره عرقش رو هم خشک میکنه قاب و باز میکنه عکس امیرقاسم و آسیه توی اونه. چه عشقی بود بین آسیه و امیرقاسم عزیزان عزیز فیلم آلزایمر رو با هم دیگه شنیدیم امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه این فیلم محصول سال 1389 کشورمونه و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول و بهترین چهره پردازی از جشنواره فیلم فجر شده بود مثل همیشه جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار خوب این برنامه بودن فرشاد آزرنیای عزیز تهیه کننده و سردبیر برنامه و بنده که به عنوان گوینده و نویسنده در خدمت شما بودم به احرام سرمرینشان تا رادیو فیلمی دیگر خدا نگه.